و آله طایبین و قاتلین در رعیت ما و تعالی مجموعه اللهم رحمتی و رحمتی و از شد بحث راجب قیام امارات و اصول مقام قد شد که از کردیم که در اصول متعدل شیعه این دوی مسائل اصول قرار گرفت و ارزو که مرگوم شیخ قدس الله نفسه پسیلی در مقام قائل میدن و حاصلش این بود که قائل مقام قطعه طریقی میشه البته که امارات کلن و بعدی از اصول این اصول تنظیر به محرزه و این به قطع موضوعی هم اگر به نهر طریقیت باشه میشه به نهر اون صفتیت باشه میشه این خلاصه کلام مرحوم شیخ قدس الله نفسه بعد از مرحوم شیخ ادهی از بزرگان اسم مرحوم های و مرحوم استاد همین مبنه شیخ رو قبول کردند همین تفصیل ایشان رو قبول کردم ادهی هم از کردم که اصل این تفصیل رو همونی شدن که اصلا شیخ این چیزی نگفته شخص قسمت نکرده دو قسمت کرده یا طریقی یا موضوعی موضوعی رو به دو قسمت نکرده محوم آیا شمسین اسفحانی اعتقادشون به اینه که شخص قسمت نکرده این هم قعیه به اصطراف ادهی از کسانی که بعد از ایشون آمده با نظر از این که این یا نباشه این احتمال داده شده من در حد قول نمیشونم بگم که در هست قسم امارات و اصول بعضی از اصول قاید نقام میشن این هم به لحاظ احتمال یا قول در حاشیه رسائل شیخ صاحب کفایه آمد و این قول حالا قول نمیشه که قائلی به ذهن و حالا قائل بوده یک وقت و قول دیگر قولی که صرفاً کلاً قائل مقام قطع موضوعی نمیشه به هر نری باشه. میهم آیه بروجیتی طبعا له استادشون صادق قای اینا قائل هستند که کلن قار مقام قطع موضوعی نمیشه. پس این فروعی یعنی عقوالی بود که در مساله طبیعتاً این اینطور میشه به طور کلی دو قول میشه یا نمیشه قائل مقام قطع موضوعی یا تفصیلی که به شیخ نصار شده. راجع به بحث طریقی هم قائلی که قائل مقامش میشه. این خلاصه نظرات در این مسئله اونی که محل بحث ما دیروز واقع شده بود بحث همین قطعه موضوعی بود و تفاصیلی که در مسئله داده شده و بحثی که اصحاب کردن طبعا اصحاب به مناسبت کلمات مثلا آلطر کفاید و علی مطالبی رو مطرح کردن که اگر ما حالا هرکایی که مثلا در فلان جا آمده یه به صلاح تقریب کلی تقریب کلی از این بحث بدید به نظر من خیلی روشنتر و واضحتر اون تقریب کلی در بحث امارات اول بحث امارات اصول هم واضح خواهد به نظر ما این بحث که آیا قائم مقام اصول عملی میشن یا نمیشن بر میگرده خودشان نوشتن دیگه نظر ما هم نیست به نظر اینا بر میگرده به مسئله کیفیت. جعل حجیت برای اما حقیقت حجیت اما را چیه هستن این بحث رو انشالله به طور طبیعی در کتاب رسائل تو اول مبحث به اصطلاح زن مقصد ثانی که حجیت زنه در اونجا ایشان آوردن ما به طور طبیعی اونجا میاریم یعنی این که آیا آقای مقام قطع موضوعی میشه یا نمیشه باید مبنای خود اون رو در حجیت امارات اصولاً بیان بکنیم این مسئله حالا چی می‌خواد بشه چی می‌خواد نشه طبعاً جز به مباحث کلیدی اصوله یعنی امروز شوانیم فیلی در مباحث اصول بدون اینکه که یک مبنای واضح و روشن در حجیت داشته باشیم وارد بشیم اصلاً چین چیزی امکان نداره باید معروض این مباحث حجیت یکی از مباحث اساسی اصوله و بنده توضیح هم از کردم نسبت داده شده به شافعی من هم ندیدم اما چون خب مرویات بروچیلین موضوع مدرزولوژی بودن اصلا ایشون میاد موضوع علم حجته اصلا اینقدر و بنده این توضیح و عرض کردم که در کتب اهل سنت هم عملا همینطوره یعنی شافعی کتب و اصول متأخر ما یه مقداری بعضی بحثها رو کم و زیاد کردن بعضی‌ها خیلی مفصل گفتن و از هم که کنن شکنان الی و توضیحاً عرض کردم حجت گاری معنی حجت ثبوتی که اصطلاحاً ما بهشون منابع تشریع یعنی کتاب حجت سنت حجته. و حجت و گاری هم مصادر مواسه حجت اثباتی است که اونا اصطلاحاً امارات هم گفته میشون و اگر امارات در موارد خارجی حجت در احکام شریعت اصطلاحاً مجادله اصطلاح یعنی به عبارات دیگر راه وصول ما به مسادر تشریف ما چطور به مسادر تشریف برسیم مثل خبر واحد مثل چیده در این برزر این راج... پس مبحث حجر یک مبحث به اصطلاح اساسی در اصول محور اساسی و و من در اول این بحث قد ارز کردم با اینکه که اصحاب متعرض نشده به لحاظ ترتیب به بحث های اصول و جازو در مرحله به اصطلاح خود ما ششم نسبت به مقام جعل قرار داریم ما یه تقسیم بندی کردیم خب در کلمات عساب نیامده غالبا در کلمات عساب ما همون تقسیم رباعی حسابپایه‌ای آمده ما میشه اون تقسیم رباعی حسابپایه‌ای از فرقی یک مرحله به نام جعل داریم انشا داریم سه تا قبل از انشا داریم که اصطلاحا مبادی جلبش میگی مبادی انشادش میگی مبادی تشریفش میگی که اول ملاکاته توضیح مقام ملاکات رو دادیم ها بعد مقام حب و بغض بعد مقام اراده و کراهت، بعد مقام جلب این تا چهار بعد سه مرحله هم بعد از جلب حالا در عبادت پای بعضیش حکم آن حکم حکم دقیق نیست اصطلاح دقیق نیست دقیق این تجربه سه مرحله بعد از جهل مرحله اول من مرحله بیان به قول امروزه فارسی ما ای کردن و به اصطلاح مرحله ارسال رسول انزال کتب داریم از این تعبیر به مرحله فعلیت میشه یکی از معانی فعلیت این رو تعرض کردن من کرا را در کلمات اصولی نون چیه چند جور میشه معناش شکی نیست یکیش این که در اصطلاح قرآنی این مرحله و ما کو نامذرین حتی نبعث الرسل اشاره به بعث رسول و در آیات دیگر هم از این مرحله تغییر به انذار شده اصطلاح قرآنیش انذاره لئنذرکم به و من بلغ و لينذر قومهم اذا جاءه و اليه لعلهم يغذرون این در اصطلاح اصولی ما بشه این فعلیت ارسال رسول انزال کتب تعبیر قرآنی هم مرحله ای انذار مرحله ششم مرحله وصول مکلeftه که همین حجت که بحث میکنه از این مرحله مرحله به اصطلاح حجت که این به اصطلاح مرحله ششمه و بحثی که الان ما در امارات و اصول داریم در حقیقت بحث در همین مرحله ششمه که این به اصطلاح مرحله وصول به مکلف یا گاهی ازش شعر میگیم مرحله تنجز اصطلاحات متعددی مراد یکی اصطلاح قرآنیش هم بلاغه لئن ورکم به و من بلغ حالا بلاغون للناس این بلغ یعنی برسه به مکلف مرحله هفتام که انتصال پس این بحث که حقیقت حجت چیه چه چی در مصادر تشریع و چه در طرق رسیدن به مصادر تشریع جزء مباحث کلیدی اصوله و این بحثی است که در اصول متأخر شیعه انصافاً خیلی روش کار شده. قدما اصول اهل سنت هم دارن که بحثا متفرقه ما تقریباً در اصول متأخر تقریبا تقریباً جموجور شده مباحثه وجیه. و اد کردیم این مسئله از همون زمان صحابه هم مطرح بوده، بلکه در یک فرع مطرح بوده، مثلا الهاشم رضا اختر اینه به قول از فیضان بر الهاشم اش شهده فا واحد. به و اذا اصالتا هوا اجرا، این در کتاب بخاری هست، هدیت بخواید. بنظرم از موسی سرش اینه. به این و هر حال این از همون اول اون مسائل مشکلشون پرسه، مشکلشون پرسه. از همون اول هم مطرح بوده که بعدها در وعده دوم سو، مسئله معروف تصویب و تخته و اینها مطرح شده از که بعد از همون وعده دوم مسئله وجود خبروار مطرح شده. مسائل مختلفی در این جد مطرح شده و الان ما وقتی بحث می کنیم در حجیت مذر نظر پس دو به دوگون انشاءالله به اصطلاح شیخ سانی در اونجا کلی بحث میاد و طبیعتا بعد از بحث حجیت زن هم ادبه از صغرایات میاد مثل حجیت زهور مثل حجیت خبر واحد مثل حجیت شهره مثل حجیت اجماع، اینها صغرایات بحث میاد البته از کردیم کرارن و مرارن بحث اساساً در اینجا در مسئله به اصطلاح شوابت و حکومیت و شوابت موضوعی نظر است البته اینجا آیان مثال های خویی دیگران همشون در مثال هایی که زدن اصولی در شوابت موضوعی مثل قادر ید و سوخ مسلم او اینا هم ذکر کردن قادر تجاوز و فراغ و اینا اصلاً تمام اینا از محل اساسی بحث خارجی هستن بحث تو موضوعی موضوعیه باشه حالا شده یه عورد فعلا فیلن عورد و الا این مباحث حجر عادتا بحث ما در اصول در شواهد و حکمیت اون محل کلام ماست نه شواهد موصول این تقریب کلیه بحث و جای بحث اون اصحاب متأخر ما مثل اشیف به بعد مبانی رو سر کردن در حجیت امارات یا حجیت در حجرش. واضح مثلا دفت بندی بکنن یعنی واضح مخرح بکنم مستقله چند تا مبنا نقل شده که من الان به نحو فهرستوار نقل گفتم تفصیلش ان اونجا یک مبنا مبنایی است که به علمای اهل سنت و اهل تسنن و اینها نسبت داده شده که اون جعل مؤداگاهی میگن که دیروزم هی گفتیم جعل مؤدا که مثلا اگر با خبر وارد حجت یعنی مؤدای این حکم واقعی است این جعل مؤدا اگر فقیه و فلان حکم اینه معده فتوای فقیه میشه حکم واقعی جعل معده که دیدونت هم زیاد اسمشو بودیم اون خودش یکی از مساله که در حجیت طبعا مراز ما از حجیت در اینجا تریعیت اونجایی که جنبه تریعیت داره و وصول به مسادر تشریف پس یک معنی حجیت جعل معده است که این بیشتر در کلمات احل سنت مطرح شده حالا تو خود این جعل هم معد در بعض از عبارات اصحاب ما واضح نیامده ان شاء بعد توضیحات کافی رو عرض میکنه یا گاهی ارزش تعبیر میشه به جعل بدن یا گاهی از میشه به انشاء حکم ظاهری اینا یکیه. خلاصش اینه که طبق این موعداس طبق این اماره یه حکم واقعی جعل میشه این خلاصه مطلب اسم جعل موعداس در مقابل یک واقع جعل موعدا میشه ان اگر در ذهن باشه در قبل از نگهدن چهارتا دلیلشون شیخ خوردن برای خود جسد زن چهارا میشه انصدازه در این یا سوم اصلا یک دعایی شده بعض دعوا کردن که ما اصلا در شریعت مقدسه تکلیفمون همون عوض شده ما دیگه الان مکلف به واقع نیستیم اصلا ما مکلف به همین طرقیم تکلیف ما بعد از واقع این شده در خود روزه مثل چون از هم هست که مثلا سنی مثلا یه روز ود طری و دو روز رو تگایی می گیرن. اونجا به همچی احتمالی هست که اصلا بگیم از ها مازه حاز که حدیث اول جاروگه چتر ما افتر نست، شاید اشاره به این باشه که ما میفهم همین مردم جمعشن روز ایرقدیقاوان وا ه می هر رو باشه. از ها مازه هماز. که انما تکلیف عوض شده تکلیف اساسا رووقف در روز نهم بود، تبدیل شد به وقوف در وقتی که مردم میستدن حالا نوهان باشه هر شد باشه. ولی ازا با علم به خلاف هم موجدیه یقین یعنی داریم این روز اهل سنت اشتباه کردن با علم به خلاف هم اون میستدن موجد اون وقوف موجدیه شد این اصطلاحا انقلاق تکلیف تحول تکلیف بشه که ما تکلیف ما از روز نهم عرفت شد در روزی که مردم میستدن خب یه تحریبی هم داره این راضیه اینکه در کتب های حجنامه شعر چون جاش اینجاست نه رافیه این شاءالله در بحثا خودش متعرض بشه این دیگه خب این معنا بسیار بدی یعنی انصافا التزام به این چه در کلی اصول چه در بحث حج انصافا بسیار التزام ضعیفه من در حد احتمال نظر کردم این یک معنا مبنای دوم مبنایی است که خیلی اختیار کردم من جمله کفایه حالا با تقریبات بعض دیگه همون مبنا رو با یه مقدار کم و اون این که معنای حجیت جعل منجزیت و معذریت شما حقیقت حجت اینه بلازه این قابل جعل حالا گاهردش ترویش منجزیت و معذریت گاهی تربیر شده به تنجیز و تنجیز گاهی تربیر شده نتیجهش چون اینا به این مشکل برخوردن که تنجیز و تنجیز قابل جعل نیستن این رو بعد برعرض میکنن من جلو خدای خویم اشکالش به تنجیز و تنجیز و اینا جز احکام وضعیه هستن که قابل جعل میستن تنجیز لذا گفتن نتیجهش نتیجه از تنجیز و تعذیره. اون کسایی که کلمه نتیجه رو گفتن چون تصویر نکردن تنجیز و قابل جعل باشه خوب چون خوب دقل. بحث ما در اینجا یک هم در در اول و و فهم اغلا در حجی هست. در درجه دوم اگر شارع تصرفی کرده این نوکسره اینا رو مثلا ممکن است ما بگیم در موضوعات حتی در احکام مسئله وسوق و اوغلا اعتبار کردن اما خب ادعا شده شارع در موضوعات تصرف کرده، بیانه رو حجت کرده این مثال بیانه رو که در این بحثام عرض کردم این تعبد شرعی نه اوغلایی یعنی اوغلا اگر 5 بگن انسان از قولشون وصول پیدا که اون حجت چون دنبال عدد نیستن اوغلا دنبال وصول این روایت آمد که شارعه مقدس قول دو نفر رو بیانه قرار داد و ولذا کسایی هم که اهلی مدار مناقشن میگن امده یه که اول اولا در اینش اجماع،, اجماع هم در این لبیت از امون داره یکی هم همون روایت نماعقز وی نکن بله ایمان و البیانات اونجا این جواب میدن میگن اکرم درست بیانه رو در مقام قضاوت قبول فرمیدن اما مقام قضاوت چون وقت صراحت اختلاف خوبه اما اینکه ما اگر جای اختلاف نیست خود من هم وصول پیدا کنم دو نفر گفتن این ملک و اون آقا نیست من میگم نه اشتباه کردن من اعتماد شما به قولشون اینکه این که دیگه موضوع خارجی اختلاف نیست این مسئله دو نفر ببینن ناجسته من میگم پاش یا شو... وصول نمون مسالهش دقیق میتونم این بحث عموم حجیت بیانه در موضوعات خارجی نازل بشه بحث بیانه اما در احکام نیستون در موضوعات الان تقدیر ثبوت اینا تعبده، مثلا اینو خوب دقت کنید ها اغلاییه، بعضی‌ها رسال تعبود این راجع به مبنای دوم که عمدتا مبنای کفایت با بعضی تعدیلات هم بعد از کفایه بعضی ها قائل شدن که تعدیلش عرض کردن میگن حجیت یه مفهوم دیگری نتیجه‌اش اون حاصلش تعذیر و تنجیده. این مبنای دوم مبنای سوم مبنای مثل مرحوم نائینی و استاد هم آیقویی مبنای ایشان را و حاصل اون مبنی تطمیم کشفه. چند دفعه می اسفردم. تعابیر دیگه هم شده. جهر طریقیته. کشف یه مقدار واضح تره. حاصل این مبنا اینه که امارات خودش یک کاشفیت ذاتی داره اما ناقص هست. شارع میاد این کاشفیت رو تمام می‌کنه. کاشف ناقص رو تام قرار بیده. پس حقیقت و حجیت تطمیم کشف اصلا. و این تقسیم کشف به چه صورتیه حالا من توضیحاتی رو بعد عرض میکنم چون در اینجا بعضی اذهان کردن این معنوی یعنی معنا از روایات استفاده نمیشه این تقسیم کشف اینجوریه ببینید مثلا در اون روایت در مخاطبه داره که امام فرمود لا عذر لا لا اجوز لا احد اینو مثلا مضمون کلام لیت لعهد مما بالنا ا تشی فی ما یروی عنه ثقاتنا که حق نداره شک بکنه یعنی شک باشه، خب چیشو آسان بر اون ناینه حرفشون اینه اگر شما از اماره هفتاد درصد درزون پیدا شد سی درصد شکه این سی درصد و شاره تحب بودن بردار شاره تحب این سی درصد بردار خایده چی میشه هفتاد درصد بجه درصد بلا بلا شک نداره <متحدث> نه ببینید این هفتاد درصد اینجا که نه من هفتاد درصد شک نکنید ایشون میخواد تعبیر رو تصمیم کشت بکنه تعبودن تعبودن میگه تاب... نه میگه تو این هفتاد درصد 20 درصد احتمال میگی بگه اون 20 درصد هم برداشته اینجور معنا بکنه میگه من 200 برداشتن برداشتم خوب دقت میکنید یعنی به ها و و لازمه ممکن است شما اشکال بکنید با برداشتن علم نیست حتی ممکن است بگیم کاشف تام اما علم نیست این یک حوزه دیگریه ایشون مخاطب محاد... خوب دقت کنید چی شد مثل؟ ایشون محال بگن وقتی گفت با... لا عذر لاهدی موالینا شک رو برداشتن هیچ شک 100 درصد برداشتن پس باون هفتاد درستاد معامله ست ایشون برای این مبنو امتنی. حتی آیه مبارکه یه شکلی هفتاد درستاد, هفتا درستاد... یعنی هفتاد درصد یه احتمال در مقابلش نداره از ما هم مبنوی ترکبنده هم مبنوی قبول ندارم خلافاً لناین استاد اما اینا نظرشون نشون این من توضیح نظر هر ثا از آیه نبرد چرا میگن نظرش اینه چه امروزی عباراتی میگوین از ترتیب اصولشون راشان هیچ ربایتی از این معنی تضمینش در نمیاد خب چه قاضی رو در میاد تقریبا شو اینا خب اهل سنت نبودن که خیلی با مبانی نهاییشون اونقدر آشنا نبودن ما یه نظری به خاطر تلمذ زیاد پیشوران آیهوشنازی و آیه خویی با مبانی نهایی از این جهت آشنا تر هستیم اینا مبناشون اینه که شاره آمد و تصرف کرد اون شک رو برداشت در کرد شد اگه شک براش هفتاد درصد صد شک نداره هفتاد درصد بدون شک وقتی شک نبود خود رو به عمل میکن. این معناع تکنیک البته میشه این رو از آیه طبیان اینجا اکن فاسمان به از آی نو استفاده کرد این تق است. مثلا اینجا اکنم به بنن و طبیان اگر فاصل خبر دنبال بیان برید بیان خودش در لغت عربی اصل کلمه بانه یوین و بیان کردین بیان هم از اینه. اصلش از جدائیه اصلا مثلا بانت سعاد فقال بلیومت بود و اون شعر معروف بانت جدا شد فرام چون انسان در اصل قطع جدا میکنه. کنه مثلا این مثلا فرص این برنجه این فرض این گهنگومه در غیر حالت خط شبیه شبه هم که بهش رفتن به خاطر شباهته چون مثلا این دانه با اون شباهت کرده گندم با چون اما شما اگر جدا کردید گندم رو یک ترم کذاشتید جور رو یک تر میگردید شما قطع قطع از های مادل است پس بیان و فتح بیانو یعنی جدا کنید جدا کنید چی؟ یعنی معین بشه کجا مشکوکه؟ کجا به ساسهیه کجا باطله اینه کاملا جدا شو بکنید حق و با باطل رو کاملا جدا بکنید و اگر آیه ندرست اگر آیه نبر مفهوم داشته باشه معناش این میشه که اگر عادل خبر اوز جداست بیانه شون میگه اگر فاسق خبر خبر اوز تبعیلون به دنبال بیان برین نیستیم تو؟ خب مفهومش چی میشه؟ اگر عادل خبر بیانه میشه بیان دیگه نیمه شما جدا بکنین یعنی خبر عادل خودش بیانه این میشه باز همین تقریبی که ایشون فرمودن تقسیم به این معنا یعنی اون 70 درصد میشه 100 درصد بلکه نظر ناینی اکثر در خدمت نظر ناینی بیشتر ناظر به اون نکته الغاء شک و احصال شک این هم مبنای سوم در باب حجیت خبر حجیت را نظر مبنای چهارمی هم هست که ظاهر عبارات شیخه دیگه مبانی دیگ هم هست که فعلا نمیخواهم الان جو بشن ظاهر اوارد شیخ انساریز که البته آیان و بردیشان مثل مرام نایمی و استاد دیگران قبول نشد ود کردن مبناهیشونه خلاصی اون مبنا به اصلا سلوکی از سرگیر کردن یعنی هجیت کاری نمی کنه فقط سلوکی این مسلحت پیدا می کنه. که اشکال معروفی من رو کرده که سلوک نمیشه تصور بکنید درش مسلحت باشه بدون مسلوک سلوک و مسلوکیه کیه این که شما بگیم خود سلوک مسلحت داره جدای از مسلوک قابل تصور نیست اگر بگیم مسلحت خود به مسلوک اون جعل بدل میشه. باید اگر مسلوک عرض شد اگر آمد گفت مثلا نماز جم واجبه سلوک چیه سلوکیه که شما نازمه بکنید پس این مسلحت ما نمازجمه میشه اگه مسلحت پیدا که جعله برد میشه این میشه بعد میگه در مسلحت جعله مواندان شبا چند برد؟, برد. این که سلوک مسلحتی داشته باشه مسلوک نداشته باشه خب تصویر نایمی این طور مرموشیت اینطوره که سلوک مسلحتی داره که خود مسلوک نداره شما نماز نمازجمه رو خوندید؟ شما اینجا مخلحه هده، مخلحه چیه؟ من که به خبر زراره عمل کرد نماز جمعه رو خونده این خود عمل به خبر زراره خود دکست، خود این این سرک نیست دیمیسیه؟ عمل من به خبر زراره چی بود؟ نماز خونده تا پس شما باید عادت هم بگی نماز مخلحه هده داره بگی نماز مخلحه داره، اون وقت چی میشه؟ همون جهر محضا میشه؟ بلا؟ <مازم> تا <خبتستان> هم ایشون میگه قابل تصدیق چون سلوک مندکه در مصلوکه. دقت کردید؟ من این موازین خیلی سنگینه، خیلی روکه رو وارد یه یک این من چی بود؟ نماز خوندم. این مقصد بود. خوب میگه سلوک غیر از مسلوک نمی کنه. دیگه حالا ان در بحث حجت زن از خویی که به نظر ما همین مبنا درسته و این اشکال معروفه، آن هم جواب خوئین داد. ان در اونجا متعرض میشیم و جواب دید. نظر ما همین حجت مصدر السنتی است که مرحوم شیخ قائله. این بحث بحثا برد. خب حالا این تا اینجا این مطلب اشکال تر چیه؟ اشکال تر اینه که یعنی اشکال های خویی و دیگران. آقای خویی میگه شما ببین روی مسائلتون حساب بکنید. دیگران هم دیگه فهم میکنه اگر شما آمدید گفتید که مثلا منباب مثال قائل به جعل معداد شدی که مفاد امارات جعل معداد خب به جعل معداد نمیاد بگه که مثلا میگه پس اون اماره حجت و حکم الهی و واقع خوب. اما نمیاد بگه علم بوهو هم علم به واقع یه علم تسراب نمی کنه مثلا اگر شما قائل از مسئله که تنجیز و تعذیر شدیم شما قایل تمایی استفاد از روایت از ادله این میشه این حکم برای شما منجد این فوقشی میشه دیگه تنجیز پیدا میکنه یا تعذیر پیدا میکنه خوب دقت کنید اما اگر در روایت این فرامه وجوب معلوم یا مثلا معلوم البولیه یا جبال اجتماعه خوب دقیق کنید معلوم این دیگه علم رو درست نمیکنه. این فقط منجزه معذر درست میکنه لذا مرمون این مقدمات رس کردن مرمون استاد اگر مبنای ما در حجیت امارات قبول شد اون هم راحت درست میشه مبنایشون تصمیم کشم مرمون استاد هم تابع ناینی تصمیم کشم قائلنده این که کشم ناقص تام میشه پس بنابراین مرمون استاد اینجور میفهمن اگر این به نحوه موضوعی باشه اگر به نحوه تاریخی باشه و دقت یعنی اگر اینجور گفت تو معلوم معلوم هست که این بوله معلوم البولی علمم اینجا طریقه خب شاره هم میاد میگه بیانه حجت بیان تاریخ؟ این چه طریق یعنی طریق تام لا سیامت مثلا شما از بیانه براتون 80 درصد شد شاره 20 درصد برداشت 300 درصد معلوم البولی یعنی, یعنی بولی که انسان کاشف تام داشت اونجا کاشف تام داره لیکن کاشفتان باشته عبدیه اون دلیلی که میاد میگه کاشفتان چی میخواد بگه؟ میگه بیانه حجته یعنی بیانه همین روازی خوندم اون روزمین روازو ولی بله اشیا کللا رواز مسئله ولی اشیا کلها علازاله حتی یه تدینه لکه غیر و زاله. او تبوم رو دهید خوب دقیق کنید یا علم یا بیانه یا علم یا بیانه مفاد این چیه؟ مفاد این که بیانه جایه علم میشینه مفاد این اینه که بیانه جایه علم میشینه شما بیانه قایم شد دلیل این طور بود معلوم البولی یک جمال اشتنابه اینجا معلوم نیست اما دو تا عادل گفتن این بولی برای من هم 70 درست وصوخ آمد احتمال رو اشتباه کردن خب وقتی که آمد گفت بیانه حجت یعنی اون سی درستر افتار اون مخالف درست چی شد کاشف پتام شد پس این کاشف پتام به بولیت داره لکن تعبدن این میشه معلوم البولیت تعبدن در این تعبد حجیده بینه روشن شد ایشون میگه وقتی اینطور شد پس بنابراین هم بولیتش ثابت میشه هم اگر در نسان زریع بود معلوم البولیت اصلا بار میشه چون این معلوم البولیه تعبدن نه واقعا چون کاشفتام لذا مرونو استاد میفرد روی مبنای ما قطع موضوعی اگر به نحر طریقیت باشه حجسته. بله به نحر صفتیه رو قبول نکنم چون باید لحاظ استقلالی بشه احتیاج به یک دلی دیگری داره به یک دلی تنها نمیشه به دلی میشه به یک دلی واحد نمیشه این خلاصه مبنای کسانی که در خب مسس که قرآن قابل به چنجیز و تحزیده. خب علم نیست دیگه میگه شما بودی معلوم بولیه این فوقش برای شما منجز شده باشه معلوم بولیه پس اونایی که میگن قائم مقامش نمیشه نکتهش اینه اونایی که میگن قائم مقام طع موضوعی به نحو هم میشه نکتهش رو خدمتون عرض دیگه کلمات دیگیری هم در اینجا هست من روح کلمات رو براتون عرض کردم فکر بکنید خیلی راحت و روشن باشه از شد که این مبانی رو چون ما قبول نداریم این راهی رو که مرمون استاد رفتن به نظر ما روشن نیست تطمیم کش از نظر فنی مشکل داره توضیح اشکال کش کشف این در آیه در محل خودشون بگید نیمکنم خیلی الان واضح این بحث بشین من فقط ریشه های بحث و براتون روشن کرد چون ما خیلی مدتیه کردیم تحضیب اصول که تحضیبات اون من مطرح نکردیم. یه مقداری هم از هر اصول ایشون تو دن اینجا ایشون یه مقداری واضح بحثای دیگه شدن متعرضش بشید. از کنم که ایشون در زیل قفع موضوعی که به نحر طریقیتی به نحوه طریقی محظر بله. ایشون در اونجا در این چاپ مثل یه چاپ دیگه هم شده در تنظیبولوز من چاپی که من در اون چاپ قبلیه که افصد در چاپی قرار نه نه چاپ دیگه کرده. حالا من از همین این که الان درست من هست نمیزم چاپه بعدی آیا اضافات کردن اما یک تقریبی هم از این چاپ شده نه از غیر آی آی آی آی از ایشون مثل مالای این مالای صبحانی تقریبیشون یکی مالای از جوادی جوادی هم داره مثلی آیه فارده چاپ نشده چون حاشی لمحات آمده اون مالای جوادی نیست لمحات اصول تحریریشون از اثر صاحب بروجردیه آراء خود ایشون تو هاشیه از یک کتاب دیگه مآخذ اصول من. اصول از از راه باشه دو ذیلیه اون خودشون نه نه یکی از به نظرم تغییر ایشونه اصول این مطلب رو در در این تحریر در اونجا هم آمده در حاشیه ایشون بر اما اون در لمه ها هااش مخصصر اینجا کم مفصل سره. در هر حال بهثر این چاپ که دسته من جل2 از صفحه6 ایشون متاثر شدن به بلث مترض این بحث شدن تا صفحه10 البته این در ضیل قطع تاریقی ایشون در اینجا مطلب گفتن که ما با فنگر مطلعیشون بعد وارد اون تحقیق نهایی مسئله نشو حالا ما بیشتر کلمات شماست ایشون در اینجا فرمودن که بحث در این است که آیا ادله امارات یعنی اون دلیلی که میاد میگه اماره حجه که آیه نبرد اینجا اون فاصله اون بنویم لیس لا عہد بموالین آتشید خود اون دلیل امارات میتونه در جای که بحث موضوعیه یا قد تریقیه یه اماره قایم مقامش میشه به اصلا ایشون می فرماید مقامه اول در امکان قیامها قیامه مقام حوث ثبوتن به جمعی اقسامی چه طریقی چه موضوعی و تمام موضوع برز موضوعی چون موادس قبلا گفتیم قبولم نداریم گه خیلی نمیخواه موازشون و اصالی فی وقوهی اثباتن و به حسب دلاله ایشون دو مقام کردن طبعا این تقسیم بندی ایشان، مقام ثبوت و اثبات در کلمات سابقین ایشان مثل من دا این و دیگران نیامده از ابداعات خود ایشانه بعد در اول ایشون نمت از ظاهر امکان ثبوتا مشکل نذاره ظاهران هم مرادشون بله ظاهران مرادشون هم اعم از این که به جعل باشه یا به جعله این باشه ظاهرا چون نشان کانت تندیل به جعله نواهد او به جعله و فی وقوعی اثباته منتفهد نشدن که ایشون. چی طور این مطلب چون به جعلی که تارکپویان قائل مشکل نداره که جعلی که تعجب ازشند به هر حال ایشون مقام ثبوت و استفاضه مطرح داشتن تو مقام اول فرمودن فرق ظاهری امکانه در مقام ثبوت و استفاضه منال محقق خراسانی الامتناع بله فی ما اضافه کردن به تنزیل به جعلی ما الهردم تعجب کردم بعد خودشون توضیح دادن فی ما اضافه کردن چون صاحبوا به جعلی میگه نداره خب در اول بگه این موعدات بعد بگه این علم موعدام این موقع این که مشکل نداره که جعل انت هیچ مشکلی نداره اشغالشون در جعل واحده بعد ایشون كلام سارکپای رو آورده و مناقشه کردن و یک جعل دیگری هم به قول خودشون یک کلام دیگری هم به عنوان جعل ترغیب دوم بودن حدود از همین صفحه 107 تا 109 مقام رو متعرض شده از کلام کران این مسئله اعتباری مقام ثبوت اثبات نداره ثبوت اثبات شکیه کسی هم از قبلدیشون متعرض نشدن و درستش هم همینه و انصافش اینه که جای بحث مقام ثبوت نیست بر فرضم که فرض خواهیم بگیم امکان داره فی نفسه این برای استظهار در خیل به درد نمیخوره ما حال در مقام استظهاری باید انحقاض ظهور بشیم و هم من مقام سانی دیگه من نمیخونم و متعرض کلماتیش نمیشم چون هم طولانی میشه هم میشه آن مراجعه کنن و اصولا به نظر ما طرح مقام صعود در اینجور جه ها طرح درستی به نظر نمید و هم من مقام و سانی اعنی مقام الاسباط بله و دلاله در اینجا تقریبا ایشو یه نقداری میخوان اعتراض میکنه ا این بحسا هایکیجه اوورند و جعل معدا و فلان و قیام امارات رو میشنین مثلا گیشون این بحث ها روشن نیستشون میکنن انل امارات متداول فی ای دینا من مستقرعلله ها عملا انل اوقللا دلارغ میزه احد من هم فی واحد من ها. حالا این فی فیاهده من نمیدان چ عدده از امارات که محل کللامه میشه حتی حوجیت زواهر شاید نظر اونبار کهشون برای بله حوجیت زوااهر اصل حجج زواهد قبوله اما رج که چرا حجیت داره محل اختلاف و آثار داره در استظهار اینطور نیست که مضافا به اینکه خبر واحد که از یکی از اساس کار حججش محل اشکاله خود اجماع محل اشکاله حتی به نحوه کاش بیاد محل اشکاله من نمیدونم راه ایشان چیه الان ماسعجی اومن نا تفسیلو اندل بحث عن حجیت خبر واحد این نکته رو من اینجا يا آثار شو میخوام تمام ظاهرا ذهنیت آیان در بحث امارات رو خبر واحد میده زاکر ولی ائمه اندالله و مخصوصا هم که خبر در موضوعات غالبا حجت نمیدان به ده استثنای صاحب کوی که حجت میدره مشهور بین علما خبر در موضوعات در احکام میجوزه به خاطر عدله حجیت و این انصافش که خیلی بایده کردم این من بحث دیروز مفهم کردم اینجا هیچ خودم از این آقای مطرح نکر امارات هم مثل اصول مختلفه بعضی از امارات در موضوعات خارجی هست مثل بیانه من تحجیب میکنم از مرگومیش و خیال میکنم فرد بحث خبر گفت مثل قول قاضی حکمی که قاضی میده این جزء اماراته اما قول قاضی فقط که موضوعات خارجی تو حکم شریف قاضی حکم میکنه حکم نداره. اگر هم قاضی در مورد حکم شریف حکمه بران اشتهاده بران مشتهل حکم میکنه نه به عنوان قضاوت قضاوت اساسش یعنی نه اینکه اساسش اینه خب توش اشتهاد هم شما تو بکنی اگر با چه اختلاف اشتهادی هم داره اما اون بلاحال اشتهاده رجوعه و مشتهله به اصطلاح. پس یکیش اونه یکیش قول وادی مثلا استاندار اگه یک مثل از حکومت نرکه کرد این هم حجته قول وکی یک آقا وکیل یک نفریست نه هست نگاه اینها این مسائل نه در موضوعات خارجی هستند که به احکام نداره اما در احکام اماراتی که داریم اول خبر واجبه اکثر زاره اجماع اون مبنای شیعه شهرت فتوایی رو مبنای شیعه چون سنی‌ها شوارع فتوایی ندارن مثلا این تقسیم سگانه شهرت شهرت روایی و عملی و فتوایی پیش ما هست چه اهل سنت هیچ کدوم نیست شهرت رواییش اجمالاً هست اما اون دو شهری اصلا پیشون نیست که از روش بحث بکنن اون بحث میشه ماسر. ان شاء الله توضیح بعد از کار این از جاییه که اصول ما جدا شده از اصول اهل سنت. ولو لو عده زارن توجه نکردن به این جدایی هایی که ما از اهل سنت توی مباحث داریم. یکیش خودیت ظواهر که این خیلی مهمه. یکیش خودیت فتواست. خوب دقت بکنید. اونی که ما در احکام باش در امارا دستگیری دست پنجه نرم اینه. و اینا انصافا مختلفه. از اینجا روی ها ششت با تحضیح مناغشه با کل کلمات، با ناینی با مرموم و دیگر انصاف بشینه که اینا امارات رو بیشتر ذهنش رو به خبر واحد رفته و تصویر رو که از امارات میدن رو به خبر واحد رفته مثلا تکیمکش رو به خبر واحد هم خب تطریم کشت روی فرس با مثال حجه اهل خبرم میان بباید داریم که مثلا حج اهل خبره اگر گفت اون تطویمی کشف بکنیم بعد ایشون میتونه اندال امارات المتدابل فی ای دینا به مستقر را علی هر عمل اندال اغلا بلا غمز احد من هم فی واحد من هم ضرورت توقف حیات المجتمع علال امنه بها این درسته ببینید من کلارم ازگم در این که در جامعه ما خبر واحل اجمالا مورد قبول بحث نیست این نمال کلام و ساقت راوی خبر سقه غالبا مفید وصوله این اشتباهی که پیش اومده اون جایی که وصولیاتی سوال اینه ایشون میگه ذروه ثلاب قصر حیات علیه غالبا که یه رو میگم میره به بر... شواهد پیداکو بر وصول چرا حیات مشترک به هم بخوره چرا جامعه به هم بخوره ولی انسان المدنی یا مدنی یرا ان البنا تحصیل العلم فل حوادث و یومیه یوج و اختلال نظام مدنی زارم مدنی یا جمع مدن اگه نست و رکود رهاها این قطب این زیربنای جامعه به هم میخوره فلم یره بدن من لا عرف یمینه و انشمال دست راست چپش تشریف داد و وقت فعلا مساله امور و مفاسدها، ها لم یره بدن انل به قول سقه این خبر واحد هستیم خوب. جب از ایشون نکنه عمل اون جهی که وصول بیاره محله کلام نیست خوب دقت بكنین ان من کلام جهی که وصول نیاد حالا جهی که وصول نیاد در زندگی بشر اگه انسان عمل نکرده گفتم برو علم بدار وصول پیدا کن این زندگی به هم می‌خوره بعد به زواهر کلام الملغ و و غیره ها و غیر این دو غیره غیر اهم واز و غیر و ملغ اینم درسته اینکه زواهر کلام جزء حجج است. البته این در احکام میاد احساس مرجع خارجی نداره در احکام میاد اما این به اصطلاح رج حجیتش فرم مکنه که اموزا ان شاء الله اشاره مینه رجشون میفرين جاء نبی الاسلام و از هر احکاما و اوزه امور و لاکه که کله عمل بالامارات بالامارات من باب انه احد الاغلا الذين یدبرون حیات المجتمع اینم یا یودیرون اینجا که یدبرون فاکتر شد اداره میکنن حیات جامعه این ملب ایشان هم درسته یعنی ما عددا ازسیار اوقلایی داریم در اختیار شارره بوده در مقابل بوده. شاره بوده شار هم بهش عمل کردیم اون درست مطلب سعیید البته ایشون تعبیر کرده اهد اوقلاب یه تعبیر معروفی مربوع های انه آشانسن شاره و رئیس اوقلی گرفته. یعنی گفته اگر اوقلا یک مطلبی رو انجام میدن و شاره دو ما انهو رئیس به ما و رئیسول اوقلاب به بده. بعدها به این کسانی ای که بعدی دیشن بحث کردن که آیا شاره با من رئیس الاغلا مقید میشه به امرال اغلا یا نه شاره رئیس الاغلا یا خالق الاغلا یا خالق الاغلا یا حالا ایشون از اون مشکل خودشون راحت کردن اله دی ها احد الاغلا دیگه نمیدن رئیس الاغلا که اون شبهات ها پیش بیاد بله مندون انی یا اسس اصلا و یقیم امادن او یهدس امارتن او یزید شرتن. خیلی تعجب ازشون من فکر گمم شد برزر چاگردیشون اضافه کرد چونانون من نیم خب بلا اشکار چاره بس اضافه کرده خب اینجا بحث نیست که پس اون در موضوع خارجی ولی اینا اضافه کرد اینکه اقلایی نیستی او یزید شرطن او یوتمم کشف امارتن ها این یوتمم کشف نیست. خودشون خیلی محیدن نه نوین رو دائما رد میکنن هویت علی طریقیتا لواحد مونند جهل طریحیات کسایی که غالب جهل طریحیاتن علاقه رزاله شون عباراتی لکی ترا شماها یک حجوم همگانی به همه این مبادی برقرار کردن که اینا هیچ کدومش اوغلی مبادی که تو آل ماچروز اینجا خوندی فهم اوغلا مساعد با این نیست و این روی گزار از زده شده متلافا کلمه علاقه رزاله که ما ترا که کلمات القوم لا دل جمله لم یکن عمل النبی و من بعده البته احتمالا این اشاره این میشه باید چاکونم باشه با باشه ولی این میفهمیدن بهتر بود چون خلافا با... که عرب عریضی داره خیلی دار میشه لم یکن عمل النبی و من بعده مورد مگه خلافای واقعی که اهل من بعدی علال امارات الا جریان علال مسلک المستقر اندال اغلاه این مطلب درسته خود دقت بکنین ما حتی به نظر ما مسالک و حتی در مثل اصول عملی هم اگه شاره چیز میشه فرق نمیکنه. بلا تأسیس امارت شاره تأسیس نگرده او تطمیم ها او جعل حجیت خب اون کسا که میان خبر باید به یعنی اهل سنت من از کنم خدمتون اهل سنت از تقریباً اواخر قرن اول و اوائل قرن اوائل مذات اواست قرن دوم دو یه دفعه رفته با مسئله حجید خبر باهی که اونا هم بیشتر از رو حجید خبر عدل خود دقیق بکنه نه خبر سره و اون حجید هم تعبدی نه اغلایی اون چیزی که در اسلام فیدا شد حجیت خبر عدل تعبدن من اول منSqlClient واسه شما. چون مطلب اساسیه پس پردنش... هر یه توضیحات کافی بود عرض بکنم که روشن بشه مطلب ان